بسم الله الرحمن الرحيم انه حمدا من قدوت الله بالله العلي لا وصلى الله على سيدنا محمد صلى بيته الطاهرين الهداه المهديين سیما بقیت الله فِي السماوات و الارزین بِاللَّهِ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ وَإِنَّ و ان عندكم لعن من مأس الله فَلَا قباره فَلَا یومه و قائعه فلا تستبتعو و بأخذه بياسا من باصه فان الله سبحانه لم ينل عن القرون الماضيه بين ايديكم الا تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر توفينا مسياري در بیزوال سخنان امیر المؤمنین در خطبه 192 به گذار مشغولیم و بهره و حز از ناب و گذیده سخنان امیر علیه السلام و سلام میبرم. قسمتی رو مطرح میکنیم و گفته شد در دو نوبت گذشته که امام درود و خدا باد. به لطافت و زیبایی مدل اجتماعی رو مطرح فرمودند فراز و فرودی رو مطرح فرمودند چگونه می شود؟ گروهی از انسانها در انتهای بحرانها قرار می گیرند تمام شدائد بریشان وارد می شود به اوج سختی ها می رسند خداوند دریچه رو باز می کند تا الهی مشاهده می شود. دست مرحمت الهی بر سرشان قرار می گیرد. دوران خوشی را تیمی کنند. اما متعهد به آنچه با خدا دارند نخواهند بود. دوباره باز می گردند. خداوند هم باز می گردند. که این ادنا. اگر برگشتید بر می گرد. عجیب ساختار ویجه ای رو امیر المومنین می فرمایند. این رو در ولد اسماعیل پیاده کردند فرزندان اسماعیل فرزندان اسحاق رسانیت نبی مکرم این بحران رو وجود نازنین امیرالمؤمنین تا ظهور و بعثت نبی مکرم وضعیت مسلمانان و اونگاه شرایط زمان در میان مسلمین انحطاط اخلاقی و اجتماعی رو حضرتش با شفافیت و وضوحی که کسی جز علی نمیتواند چنین نقده های سنگین محلک اجتماعی داشته باشد بیان فرمود در این بررسی رسیدیم به اینجا که وجود آنباره که امام فرمود بدونید وعلم و انکم بعد هجرت هجرته احرابا. شما بعد از اینکه اومدید گذار کردید و فاصله گرفتید از ها از پستی ها و تقیان ها، شرک و گفر ها اما باز دارید بر میگردید، برگشتید، اعرابی شدید باز بدوی شدید، رها کردید فرهنگ دینی را بعد از اون که دلبستگی ها آمد باز تشبتت ها و اختلاف ها شما به اسلام جز به اسم اسلام تعلق ندارید حقیقت ایمان رو جز رسمی نمیدانید نار رو میپذیرید، آر رو نمیپذیرید گویا شما تریدونن تکف الاسلام علا وجه وارون اسلام را میخواهید و علم علمداد میکنید و حدود اون را زیر پا میگذارید به کفر و غیر پناه میبرید بدانید در اون صورت نه جبرهیل هست نه میکاهیل هست نه مهاجر هست نه انصار هست که به لسطنت و شما بیاید مگر شمشیرها ها و تیق های آمادهی که باید با اون مواجهه بشید تا حکم داوری الهی این پایان عراضی بود که شرحون رو بازگو کرده در اینجا امام فهمد و باز هشدار جدی و ان عندکم الامثال من بأس الله و قباره و ایامه و بقائه دیر نشده است چشمتون رو باز کنید ببینید پیش روی شماست نمونه ها امثال و نمونه ها من بأس الله در اون جایی که بحث و سطفت به قدرت و قدرت خداوند فرود است و قواره القارت و ملقاره در لغت به معنای کوبیدن به این پتکه هایی که صندان میزنند با قدرت مقرعه میگویند قواره به حوادث کوبنده میگن که زیر رو میکنند فرمود و قواره و حوادث کوبنده ای که خداوند برای جماعتی پیش آورده است که همین مسیح رو تیکل و ایامه و وقائه این یه استناه هست در کلام عرب به حوادث بسیار سنگین و دوران دورانون حوادث او و الایام می گویند به حوادث بسیار سنگین اصلا ما کتاب هایی داریم با همین عنوان او و ایام. در میان مصنفین و معنفین حرب و ایامهی و وقایع بسیار کسانی هستند پیش روی شما که میتونید چشمتون رو باز کنید در تاریخ نگاهشون کنید نمونه هایی که چگونه ایام و وقایع بر ایشان آمده است و خود اینها یه اعتبار ای و عبرت نامی برای شما هست پس فلات هست حبد دعی دهو جهلن باخذه نکند که استبطا کنید استبطا از ماده بوت به معنای کندی گفتید افراد خیلی کنده میگن ها بطی اند اینها خیلی دیر می جنبند رفت دارن امام فرمود نکند که استبطا کنید کندی کنید و عید الهی و وعده های سنگین الهی رو بر اون عقوبت هایی که فرموده است جهلن باخذه از باب این که ناغاه باشید و ندانید که خداوند چگونه اخس می کند اِنَّ اَخْزَ رَبَّكَ شدید بدون اگر خداوند اخس کند و بگیرد کسی و جماعتی را به وقتهای خیش به شدت میگیرد. گیرد مدرکل حاربین قاسمل جبارین مبیر ظالمین اگر خدا بخواهد به وعید هیچ عمل کند و با اون قدرت عمل در جایی بپردازد به بندگان هیچ که می نمیماند کسی بر روی زمین فرمود نکند به خاطر جهل به وعید الهی متداوم این است در بین بزرگان که وعد در مورد امید ها و نوید هاست وعید در مورد تهدید هاست نکنه سست بگیرید و جدی نگیرید های الهی رو از بابی اینکه که نمیدانید خدا چگونه عمل میکنم این واجه روی وقتی خدمت دوستان توضیح دادن مناسبه که در جای خودش رحمت و امید در جای خودش به و عذاب دقیق گفته بشه مثال زدین این ساتور رو این قصاب بلند بلند میکنه میکوبرو این استخان راه مقویین یه مویه این میکند اما نمیتونه قطعش کنه نام این ف فساد میم فاسم اما اگر بازو قوی بود و ساتور هم تیز و برنده آنچنان کوبید که دوتا شد دو تکه شد یه نقطه میاد بالاش اضافه میشه میشه قصم پس قصم به معنای زدنیست که کمرشکه است، دونیم میکند حالا قاسم جباری خدا اگر به کمن جباری بزند دونیمش می کند مویه نمی کند فاسم نیست قاسم از باساد می خداوند به دونیم می کند این نبت شرب بکند شدید این گونه خداوند عمل می کند نکند جاهلانه رفتار کنید و بدین شیره و تهاونن به بطشه تهاون از ماده هم و پستی سبک گرفتن و کوچک گرفتن نکنه کم بگیرید و سبک بگیرید بعدش قهر و قلب خداوند را و من منبعثه تا بگید نه خدا که به ما کاری ندارد خدا که حالا چیزی بوده است دیگران معلوم نیست چه کردن چنین شده است خیر، شد خود شما هم میتوانید مورد بعدش و قهر خداوند واقع بشید حالا اینجا در پایان این بخش با همه مطالبی که دیروز گفتیم خدمت دوستان نسبت مسلمانان که خیلی تکان و و جدی بود و عرض کردم آنچه امیرالمومنین المومنین زمان نداره عزیزان اگر امام داره مخاطبه به جامعه خودش و مردمانی میگوید که چنان رفتاری داشتند همیشه قابل انتباه در طول تاریخ خواهد بود. در این پایان این بخش بر این فقره امیر اشاره به یکی از آسیب ها و نکات جدی می‌کند. خب اینها رو عرض به خدمتون فرموده است الان در خط بعدی هم باز به شکل کلی تر اما یه نکته جدی رو اشاره می کند اللَّهَ الله سبحانه هون. لم یله عنل قرون ماضه بینیددیکن الال تکه مله امربل معروف و, و نهل منکه خداوند لم یال القرون ماضیت لم نکرد قرون و تمدن های گذشته و مردمان گذشته را مگر به خاطر این نکته ای که الان نظم میکن به امام میفرمایند. کلمه لن در لغت ایل بعد بد دوری. عباد دور کردن ملعون یعنی دور دور از چه از رحمت الهی پس خود کلمه لعن عزیزان دقت کنید گاهیونگاه رو خب بعضی های ی اساسیت هایی از یه جاهای برمیخیزد متوجهشون میشه گاهی رو این کلمه لعن در مواردی مانند مثلا لعن های زیارت ها رو یه اساسیت خاصی میگیرن به فکر چیز خاصی در ذهنشون میاده اولا بدونید که اولین لعن کننده کیست خداوند ان علیک اللعنه الا یوم الدین خداوند به شیطان گفت لعنت من بر تو تا قیامت قیامت به تعبیر ما اورا اونشان هم الله و یلعنهم الله انون اینا کسانی که خدا لعنشون میکند باید لعن کنند و هم لعنشون کنن در قران میفرماند لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل آنادسان داوود و انیص ابن مریم داوود لعن میکند عیسی پیامبر رحمت لعن میکند لعن یعنی اجرای عدالت الهی خدایا این ظالم ظالمه از رحمت دورش کن به عدالتت این میشه لعن وقتی شما میگید اللهم لعن اول الزالمین خدایا اولین ظالمی رو که ظالم کرده است و بنیاد ظلم رو گذارده است اگر بنا باشه مشمول رحمت تو باشد که چه خدایی چه عدالتی اگر بنا باشد یک سوی سفره یزید ابن مهاویه بنشیند و سوی دیگر و سیل ابن بنشیند کو عدالتی به خداوندی اللهم اللهم یزید خامزا پس لعن یعنی دوری از رحمت در نهایت ادب. در نهایت ادب. اونی که گستاخیست ما نمیپذیریم لن نیست سب است سب یعنی فهاشی یعنی حتی اوکی. وجود نازنین پیامبر اسلام فهم بود مابعست و سبابا خدا من منو به سب مبعوث نکرده است من فخش به کسی نمیدم. لب باز نمی کند به ناسزا گویی اینه که ما مورد ردش قرار می دیم حتی در حق مؤمن اگر باشه چنین سببی میگیم سباب المؤمنه کفر سباب المؤمنه فسق اگر یک کسی ناسزا و فهاشی به یه مؤمن میکند این موجب فسقشه فاسق میشه کسی که چنین سخنی میگوید در حقی مؤمنی، پس این خاطر مرکتون باشه امیر فهمود به راستی که خداوند لن نکرده از قرون ماضی جماعات گذشته را بین عیدی پیش از شما اللا. یکی از علتهای جدیش رو اینجا میفهمد مگر به خاطر ترک کردن ایشان امر به معروف را و نهی از منکر را فلعن الله خب حالا وقتی این اتفاق افتاد فللعن الله السفهاء لركوب المعاصی این قسمت رو بگم توضیح میدم پس خداوند ننگ کرد از رحمتش دور کرد سفها را کلمه این سفها از ماده سفها و سفیح مفردش سفها در لغت ای خف خف ان یعنی سبکی و من یرغب و من یرغب عن ملته براهیم الا من سفها نفسه قرآن میگه کیه که از روش ابراهیم روی برگرداند مگر کسی که نفس خودش را خفیف و سبوک کرده باشد گاهی بعضی ها دیدید که این های رفتار های انجام میدن تو جامعه بعد دیگران میگن آقابلش کن. این سبوک مقز است میشه سفی سفیه نیست یعنی سبوک سر سبوک مقز توجه فهمونید؟ امیرالمومنین فرمود که خداوند سبحان لعن الله فلا ن الله السفهاء خداوند سفیهان را لعنشون کرد به خاطر رکوب معاصی به خاطر ارتکاب معاصی این عجیبه این از خود قرآن هم گرفته شده است وقتی جناب موسی دیگه تو اون حالات خوش داره در تور صحبت میکنه وقتی یه معاصی رو میبینه در میان بنی اسرائیل تو جامعه پشتش میورزه چون میدونه این معصیات ها چه میکند با جامعه میدونه بااست ها به این معصیت ها چه ظلمت ها و تاریکی هایی ایجاد میکنن لازم میگه ملا تاخذنا بما فعل السفهاء منا خدایا نکنه با رفتار و معاصی نابخردان ما را مؤاخذه کنی پروردگار کن. به لطف عمل کن اثر نادانی و جهالتشون چنین میکنند امیرالمومنین فهمد که لا نالله صفا خداوند لحنشون رو کرد سلاح کرد سفیحان رو, رو و سبکسرند را به خاطر ماسی کارش انجام دادن اما نه فقط اینها را ول خلماه لترک تنوعی و از اون طرف خداوند لعن کرد خلما آرا. ببینید کلمه کلمهی از ماده حلم ریشه اصلی حلم جمعش حلوم. خولم یعنی عقل خلوم یعنی عقلها گاهی امیر المومنین در مورد بعضیاتون احجال بلاغه داره که اینها رشد فیزیکی گرنن درست شدن اما عقلشون دروشت نشده رشد نکرده خلوم هم که حلوم الاطفال خلوم اینها به اندازه حلوم اطفال است یعنی اینها عقلشون به مقدار هنوز دورانه تفودیت هنوز اموزوش نکرده پس حلم یعنی عقل حلماء ما یعنی عقلا به همین خاطر است که نوعی از صبر را که ریشه اون قطعا خردورزی و عقلانیت است حلم میگویند و کسی که دارنده این نوع صبر اقلانه است میشه حلیم ریشهش اینجاست. امیر المومنی فرمود خداوند صفحه ها را به خاطر ارتکام معاصی سی کرد کردن رو پیشین و خلمه را یعنی اقلای جامعه را اونهایی که اینطور نبودن اینها رو هم لحنشان کرد چرا؟ به خاطر ترک تناهی به خاطر اینکه اینها نهی کردن پیشگیری از منکر را جلوگیری از وقوع منکر نکردن گفتن میبینم هاشان کنن بازی رو تماشا میکنن تما شاگر شدن گفتن اینسان به دین خود موسا به دین خود گفتن هر کسی رو تو گور خودش میذارن گفتن تو چه دانی که پس پردک خوب است تو که زشت ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت منطقشون چیز دیگری شو. لتر که تنا بسیار استعزار دارید این فرمانشی که امیر المومنی میفهمد تو خود قرآن و کلام الهی وجود همین آیهی که الذين الان خوندم خدمتون به پایان آیه میرسند وکانو لا یتناحون ان منکرین فعلو لبع سما کانو یفعلو چرا این مورد مرد قرار گرفتن؟ سور این توبه میفهمد به خاطر این که وکانو لا یتناحون ان منکرین اگر هر اشتباه و خطایی هر محصیتی در جامعه انجام میشد اینها ها بی تفاوت محض هیچ کاری نمی کردن و حتی هماشاگر بودن لبه سماکان و یفعلون عجب رفتار زشتی رو پیش گرفتند و عمل کردند. عزیزان باید عوض کرد مدل نگاه رو من این گفتم یه وقتی خدمت دوستان در مواز تفسیر اما اب نداری اینجا در نهجا من تکرار کنم خدمت دوستان آخر یه روز یک ای بود از در یه میزگاه قطار شهری متروی شیکاگو یه زمین مورد تعدی و تجاوز جنسی واقع میشه مردمم تماشا میکنن تو هم مترو دیگه اون آخر سن که زجه و فریاد بسیار زیادی میزند خود این متجاوز دیگه دلش میسوزه ول میکنه میره بعد جوانی هم دیگه حالا اونجا و بالاخره وقتی میبینه این سحنه رو پیش میکند اندین اومنی می بالاخره برسه بگیره پلیس میاد و معرفیش میکنه که آقا این مثلا چنین کاری رو به قنف کرده هست ناظری داره این ماجرا که این ناظر شخصیتیه که خوب درس خونده در رشده های مختلف چند تا دکترا داره و به چهار پنگ زبان دنیا مسلط آقای پروفسور مایکل کوک امریکایی جریهدار میشه شخصیتش وقتی این صحنه رو میبینه میگرده این طرف اون طرف ببینه آیا برای چنین ماجره های قانونی مدلی در عدیان تفکرات و مرام ها و فرهنگ ها وجود داره یا نه این انگیزه میشه این تجاوز بعد از آخه یک شنبه قطار شیکاگو میگردد میگردد در اسلام به مغولهی برخورد میکند به نام به معروف و نهی از کرد شروع می کند این آقا تحقیق مفصلی رو دلید حج انجام دادن و قریب 700-800 کتاب رو می خونه حتی کتاب های فارسی حتی کتاب شهید علی در متحریم تو رفرنس و تو منابعش هست اینها یک کتابی می نویشد بسیار گرام سنگ امر به معروف نحی از بانکر در اسلام ثابت میکنه که این مدلی که اسلام ارائه میکنه این مدل خیلی جالبی است در این صحنه های اجتماعی و در این موارد توجه دارید این کتاب ترجمه شده است دوست تمام من دلا آقای دکتر محمدحسین ساکت این کتابو ترجمه کردند با عنوان شایست و ناشایست در اسلام شایست و ناشایست در اسلام خیلی مهم این بحث امره معروف نهی ازمون کرد که ما به عنوان یک فرع دینی یک چیزی مطرح میکنیم و میگیم و, و گاهی هم باز خدای رحمت کند نام ایشان دوباره برده میشود مرحوم شهید استاد و بزرگبار متحری گاهی هم از نه نح... مرره به محرو و نهی از مارک چیزی که دو ذهنمون میاد فقط پند و بند است تعبیر از ازمد نیست پند و بند است یعنی این دو. تا عممر منون یاد تو دوتا میفتیم حالا این نیست قصه اون بزرگی که شما 1300 اندی آشورا برای او میگیرید و وقتی نامش برده میشه تا میگن سنن ناهانک ایو ابو عبدالله بند دلتون میلرزه و اشکتون جاری میشه شهید عمر به معروف و نهی از من یعنی هدف خودش رو سید و شهده در برون آمدن چمت ره میکنم؟ من نه اشرنم نه بترنم نه من نه ظالمن اینم لطلب الاسلام فی امت جدی و ان آمور بالمعروف و انها ان آمور بالمعروف و انها ان المنکر و هسیده به سیده جدی و من هدفم امر به معروف و لحیه از منکره اصلا فلسفه قیامش رو سید و این حکم اجتماعی اسلام می داند. اما خب این بحث خودش بحث دابنه است. الان هم در نحجور بناقه بنایه این نیست در تفسیر این رو در سوره مبارکه یا آل امران در دو آیه با ده شماره فاصله به تفصیل و میشه گفت انشاءالله امده جوان به این رو من بحث مفصل دارم و تمام زیر های روزش که اونجا میتونید دوستان مراجعه کنید در حال امران کنتم خیر امت این اخت این آیه و آیه بعد از آن اشاره کرده هم. اما همین مقرار هست میکنم ببینید معروف یعنی آن در نزد شهر و عقل شناخته شده هست رفتنش. منکر یعنی آنچه در نزد عقل و شهر جایگاهی ندارد و ناشناخته نکرهی نمیپذاریدش خب حالا شما تصور کنید جامعه ای که در اون معروف حاکم باشد و منکر زودوده شدند آیا بهشت الهی قیل از همان جامعه است؟ نه این میشه بهشت خداوند بهشت معود خدا میشه یعنی هدف گذاری با امر به محروف و نهی از منکر رسیدن به بالاترین حد جامعه آرمانی است، متعالی بشری است، امره معروف و نهی ازمان که این رسالتی رو در میان مسلمانان سنمانان بدوش دارند. حالا امره به معروف و نهی ازمان کرد، یعنی فراخاندن و دعوت کردن، فرمودن به معروف، نهی بازداشتن ازمان کرد. مراحل این رو مطرح میکنن خود همین رو مؤمنین تونت جنبلاقه مطرح میکنن میفرماد اولین قدم امر به معروف و نحی از منکر از کجا شروع میشه؟ از دل از قلب شروع میشه مسلمان باید قلباً وجودش قلب و روحش مجذوب به معروف و منزجر از منکر باشد تا این نباشه در بیرون توفیقی پیدا نمی کنند جامعه در این ابتدا ابتداعاً با یادر این کار کرد که دل معروف پسند و منکر زدا باشد نه منکر این همان تو دل بچه معیار خوبی هم از برای ایمان که هر کسی با خودش خلوت کند ده تا نام رو این طرف ببرد ده تا نام رو اون طرف ببرد از صاحبان فضاقل و شایستگی های تاریخ از اون طرف کسانی که تو این وادی نیستن. بعد بین کدوم رو بیشتر دوست می‌دارد با کدوم ارتباط قلبی و روحی بهتری می‌تونه برقرار کنه عکس چه کسی رو تو اتاق خوابش نمیدونم پیرانه کی رو پوشیده که عکس اون روشه حالا همین چیکار کنه کدوم رو میزنه نگاه میکنه کدوم کانال رو نگاه میکنه خب این داره خودش رو تست میکنه دیگه داره خودش رو میسنجه که اهل معروف است یا ابن منکره وقتی نشسته 5 ساعت 4 ساعت تخت تخت تخت یکی از یکی ننگین تر و زشت و کسیفتر و پلش تر یعنی اینی اوهد بکن یعنی اهلمون که من با شما من دفیق شما من تا تو خلوت خونم این کار میکنم چون جلو مردم نمیتونم بکنم شامت چه ندارم اما اونی که داره شامت چه جلو مردم رو انجام میده که میشه تست شناخت خوب برای اینکه این طرفیم یا اون طرفیم دلمون با منکره یا معروف بعد میاد بیرون به تعبیر امیر المؤمنین و دین زبان. آن با این قید خدا رحمت کنند از ات امام گاهی مکنرد میگفتن فقه جواهری فقه جواهری این فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن آل جواهر اصلا دوستان اهل عرض به تحقیق و پژوهش اساتی در انجمنمون و همه دوستان بزرگوار من من معلمی که میام چه تا پنج تا نمیدانم دانشجوی خودم داره دکتری رو نمیدانم پایان نامه این ها روغ اینها رو, رو راهنمایی میکن. بعد می پایان خروجیش این رو چکار کردن بعد از یک دو سال. با همه نمیدانم این پروژه پروژ چطر تر طرح -تر است حمایت فلان می شود، بعد می تو خروجی این نمیدانم دو 300 صفحه, صفحه در اومده چیزی که همه جورم نقد بهش میشه که توسط یک فن این یک تنه. مرد تو نجف 150 سال قبل میاد 43 جلد کتاب می نویسد. 43 جلد کتاب می نویسد تا وجود هر جلدش 500-600 صفحه هر جلدی یک دوره کامل فقه شیعه از اول کتاب تهارت تا انتهای دیا و حیفه میادی رو نگم یه جهایی مرحوم ساب می نویسد. الان که من مشغول تعلیف این کتابم هیچ بیت و خانه ای نیست در نجف الا اینکه تا اون ازش قربانی گرفته است الا بیت آل جواهر مگر خانواده ما که والله الله میدانم. این نیست مگر به برکت اشتقاد به فقه محمد و آل محمد این فقیه بزرگوار که کتابش دیگه بالاترین حد تحقیقات فقهی است توفیقش خدمت دوستان در بحث کتاب النکاح فقه خارج رو که تدریس می کنم در مشهد در مبان سهم زمین از منابعی که استفاده می از آن جواهر صاحب جواهر است در تمام مباحث استفاده وافر می کنم من از تألیفات و تحقیقات این بزرگوارها هدای ارواحین آلمان، عالمان فقیهان شهیدان امام شهیدان و حقدارانمون رو و گذشتگانمون رو و اساتیدمون رو در این سحر جمعه قریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند میرسد به کتاب امر به معروف و نهی از منکر میگه اولین قدم امر به معروف و نهی از منکر از درون که بیرون میآید امن یلبس ردا المعروف و ینزع ردام المنکر اولین قدم فراموش نشه اینه که خودت لباس معروف را بتن کنی و جامعه منکر را از تند به درامورین این قدم اولش در برو و الله رتب خورده من رتب که کنم بله فایده نمیکنه اثر نمیکنه تا زمانی که آمران به معروف فائلان معروف و نهیان از منکر متناهیان و ترک منکر نباشن، اون اثری که شریعت می خواهد دیده نمی عزیزان این یکی از نکات آسیب شناسی این قضیه است در بین مسلمان ها. حتی دو محیط خانوادگی بالاخرین، فرزند بزرگگو به این پدر و مادر میگه خب چرا شما مگه خودتون این کاره مگه خودتون ماه قبل مگه خودتون هفته قبل مگه تو مادر به ما می رو نگفتی مگه تو به خالب می رو مگه تو به فلانی رفه خب منم همین کار کردم میگه اون با شکل دیگری چه فرقی میکنه اگه بده بره تو هم بده اگه خوبه برم منم خوبه اثر میکنه تو تربیت بچه چمون چون خب واقعا بین قول و عمل ما فرزندان تا آرزو تناقوز میبین میبین؟ عمل به معروف نمی کنیم اما دعوت معروف می کنیم فایده نمی کند این اصلا تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند ترک دنیا به مردم آموزند خیشتن سیم و اندوزند او نمیشه. این فقیه بزرگا که همه اتفاق دارند رو حرفش یه قدم اول اینه که جامعه معروف را بتن کنی و جامعه منکر را از تن بدرآوری بعد از این میرسه نوبت اون که اندوخته ها آگاهی خودت رو نسبت معروف امکانات خودت رو نسبت معروف در اختیار دیگران بگذاری اونها رو فراخوان کنی به معروف و امکانات خودت و اطلاعات خودت و آگاهی خودت رو در زدودن منکر خرج کنی در جامعه و اینها رو صرف کنی برای زدودن منکر یه حتی از امر معروف و نهی از منکر از من شما فراتر میشه عزیزان در اسلام اون امر به معروف و نهی از منکر حکومتیه که حکومت اسلام وظیفه داره اونجا دیگه گرفتن و بستن هم توش هست اونجا دیگه امال و قدرت حکومت درش هست اون دیگه وظیفه یا حاکمیت اسلامه که با انها منکر مقابله کند و بزداید اون دیگه جنبه فردی نداره جنبه حکومتی دارد. حالا من اینو که گفتم خدمتتون این فرمایشم هم. یه چیزی هست که این دیدم اخیراً این تو این سفر سوال زیاد شد یعنی همین هم از من سوال کردن یکی دو رو صبح اینجا سوال کردن این نکته است که آقا خداوند اقوامی رو جماعاتی رو در قرآن مثام میزند قوم چی قوم چی که اینها رو از بنیاد برداشت برد نابودشون کرد خب شاید ما اعمال شنیتر و زشتری رو می بینیم. اما خداوند برنمیدارد از میان نمیبرد قوم و ملتی را که المؤمنین داره می خود خداوند در قرآن می اگر نبودن کسانی که ینهاونن الفساد خیلی نکته مهمه به عزیزی هزمی کردم از دوستانم که سهال می فرمودن. گفتم ببینید مثال زدم گفتم در قبل مجلس آنونگزاری فرانسه رسما تسبیب کرد ازدواج همجنس بازان و با هم زنان با هم 4 روز قبل از اینکه این قانون وضع بشه، و 4 روز بعد از اینکه این قانون وضع شد، در اوندهی شهرهای فرانسه تظاهرات و راهپیمایی و اعتراض علیه این قانون بود. توسط خود فرانسوی‌ها در حمایت از خانواده پزشکی این عمل. خداوند چنین جماعتی را از بیان بر نمی‌دارد چون در بینشون کسانی هستند که ینهاونا نه. بنابراین نهی میکنن. تو همون مملکت، اهل نه همون مملکت با همون بودجه، با همون مالیات، با همون حکومت، با همون وضعیت، نمایندهای همونان تو مجلس اما اعتراضشون دارن میگن و مطرح میکنن. وقتی خداوند قومی رو برمی‌داشت که همهشون از یک کنار اول آخرشون سر و ته یک رواس بوده، اماشون به یه عمل راضی بودند اما وقتی این نبود خداوند به برکت وجود خوبان همانها که مخالفند حفظ میکند جامعه را و عذاب استیصال یعنی عذاب به بنیان یه جمعی نمی آید امیرالمومنین فهمود اینها رو نگاهشون کنید اینا چون چنین نکردن فلعن الله السفهاء لركوب المعاسی خدا لعنت کرد سفیهان رو که این رفتارها رو انجام دادن آقلان رو هم که ترک کردن و تماشا کردن به هیچ کاری ازشون نکردن و انجام ندادن الان آخرین سخن امام در این قسمت الان وقت قطعتم قیدن اسلام ببینید قید این کلمه رو به کار میبریندی که این دوستان نجار ما و غیره بید رقیره اون که متصل میکنه مرتبط میکنه شما ارتباطتون رو با اسلام از جهت فکری عملی اخلاقی قفل کردید الان وقت قطعتم قید الاسلام شما زدید همین تعبیر آمونگی قید فلانی رو زدیم درست این کلمه ها از جهت شما زدید قید اسلام رو یعنی بوریدید ارتباط دقیقتون رو با دین خدا بوریدید ارتباط دقیقتون رو با دین خدا. من چی بگم خلیبت اصلاح است و عطلتم حدوده و حدود الهی رو تعطیل کردید عمل نمی به حدود و حکام الهی و عمدتم احکامه می رندید احکام اسلام را آجه درگوی دارید در انتظار آن باشید که به روز شما آید آن که من علی دارم میگم پیشینیان رو برای شما مطرح کردم در بخش های قبلی پس اون نحیه از نکردن امره معروف نکردن یک گوشه ایست و یک شمه است از بریدن قید اسلام الان وقت قطعتم قیدن اسلام و اتلتم حدوده و امدتم احکامه به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین میاد به صحنه. از خودش یه چیزی میگه که دیگه غم انگیز باید بخونی. انا باقات امران الله به قتال اهل الباغ. من اهل ساکت نمی نشیدم خدا آگاه باشید منو امر کرده است به قتال اهل البقیه و نکف و الفساد فی من با سه به شدت مقابله میکنم و مقابله کردم و خواهم کرد. یک خداوند منو امر کرده است به قتال اهل باطل اهل تجاوز و ظلم و تعدیم و نکف نکس شکستن بریدن قطع کردن و فساد فلعث اونها که خارج شدن از حدود دین و به فساد کشیده شده اند اون کسانی که وجود نازنین نبی مکرم این جمله رو فرمودند که عین متن این تو ساحه سته اهل سنت میتونید ببینید تو کتب شیعه میتونید ببینید که فرمودن صدقاتلو علی تو به‌زودی می جنگی و نبرد میکنی بعدی بعد از من صدقاتلو بعدی اناکسینا ولغنسینا و ول المارقی همونای که میرمون تو خطبه شخشیه خطبه سی نهشون بلاغه هم شبها ها دون رو مثلا میکنن تو ام رسول خدا فهمیدن به سه گروه با سه گروه بعد از من تو درگیر میشی و با اینها مبارزه می‌کنی یعنی امام در اینجا در همین سه گروه رو مطرح می‌کنه فرمود الان وقت امرنی الله به طمع اهل البقی و نقض و الفساد فلز فاما فا الناکسون فقط قاتلتون این خطبه قاصعه سال ماه آخر عمر امیرالمومنین گفته شده ها خطبه این که خوندیم 192 مانه سال پایانی یا عمره امامه فرمود اما ناکسون ناکسون از ماده نکس گفتیم این چی؟ اینی شکستن خب چی بودن نکس کسانی که با امیر المامرین پیمان شکستن آقا گذشت دوران 23 سال 25 سال صبر تو و فلعین غذا و فلحل و شجاب استخوان در کلو و خاره در چشم رو تحمل کردم من علی تا شد آن چه شد فتنه ها آمد و حجمه شد بر خلیفه کشته شد عثمان ابن عفان. بعد ریختن مردم برگشتن به اون روز اول و توصیه پیامبر گفتن علی تو مگر بتونی اسلامون اجاد بدی ما گزینه ای نداریم دیگه همین رو ول کنید مرا. من اگر مشروعیتی ولایتی از سوی خدا دارم دارم با آمدن و با رفتن شما فرقی نمیکنه. مقبولیت شما رو نمی‌خوام اصلاً برید تا جایی که جدی شدن ما گفتن نه ما جدی میگیم شوخی نداریم بپزید دیگه اینا مش حوش و امام تو نجف بناگه به زیبایی مطرح میکنن تو های مختلف اومدید اومدید تا جای حمله جمعیت که من ترسیدم فرزندانم زیر دستپا برن اصلاً اینطور حمله کردید برای بیعت گرفتن از من و بیعت کردن با من که با من بیعت کنید عنوان خلیفه چهارم خب دیگه امیرالمومنین المومنین پذیرفتن همه اومدن اتفاقا معدودی به تعدان کمتر از انگوشتانه دست با امیر بیعت نکردن کسانی مانند سعد و قاسها توجه داری؟ یه افراد معدودی که دیگه اینها خیلی سنگی نبنسته تمام شد منقض شد اما چند ماه گذشت که گروهی با امیر المومنی نکسه بیعت کردن پیمانشون رو شکستن از درون این پیمان شکنان و هم من ناکثون ناکثونی که من بایشون عرض به خدمتون مقاتله کردم سردمداران و جروداران این که از اون واقعه جمل. تا جنگ خونی یجمل برون آمد، توطئه بصرہ بیرون آمد، حمله کردن به بصرہ، بسر رو پایگاه کردن، مقابل علی علم کردن، عثمان ابن حنیف انصاری، والی بسر روی من تو کتاب شکوه شکایت نوشتم اینها رو، چون نامه 45 روی من به اون نوشتن دانه دانه ریشش رو کندن، نطف کردن نه که جیغ بزنن ما، دانه دانه ریشش رو کندن، ابروشش رو کندن، موشش کندن، شکنجه تا کلید ما رو بهشون بده. که برانت سر رف و ببینین چه خبر است مصلحی که دسوی اون زبیر ابن عوام مصدو تله ها و قول حنیف صلوات الله تول خیر و سوی سلبم هم همسال پیامبر را بر اشتر سوار کردم کنت هم البهیمه و جند مراه به تعبیر امیر المؤمنین تو نهچر بلو شدن پیش شتر علم کنن ناموس بیگ ام المؤمنین ام المؤمنین صحنه جمل بر پاشا چی گذشت به امیر المؤمنین چقدر خواهش رو تمنا کرد چقدر امیر المؤمنین به تعبیر ما پیغام و پسقام فرستاد شما رو به خدا دست بردارید خون نریزید تا دیگه چاری نبود اومد بسقه ما با اینها مواجه شد باز هم اونجا مذاکرات فایده نکرد دیگه آخر کار گفت خدای تو میدانی که حجم تمام است. وقتی سفارایی شد به تک تک سپاهش دستور داد یک تیر حق ندارید بندازید مگر اینکه اونها حمله کنن شما دفاع کنید بعد شد تموم شد جمل فرمود یک نفرشون که فرار میکنه حق تعقیبش ندارید حق ندارید از پشت تیر بهش بزنید کشتشون اون دو نفر آیشه را با حرمت و کرامت تو میدان جنگ ابن نداره آن سابه جامعیز دلامون حضرت بین جنگ دیدن این وسط محرکه شطور فرستادن محمد حنفی رو گفتن بابا برو شطور رو به خوابان و آیشه رو به محمد بن عبی بکر برادرش گفتن برو پشت سر محمد حنفیه وقتی که شطور خوابید خوهرتو بگیر نگذار به زمین بیفتن و بیار بیرون از میدان محمد حنفیه رفت قبیله یه بنی زبه مثل شیر قرآن دور و شطور رو گرفتن اجازه ندادن یه نگاه این که وجود نازنین امیر میخوامدن بابا مشتبه تو برو از زد و مشتبه یه رو نشد یه صدا یه نهره بلند شد چطور خوابید محمد رفت آیشه رو گرفت با عدم بردن تو بسره توی خونهی فردا هست شمیر و ممنین رفتن دیدنش برید بخونید تاریخ یعقوبی تاریخ مسعود اینا هم هست رفتن دیدنش با عدب و احترام ناسزا گفت حتی کی کرد علی سرش رو پایین انداخت تحمل کرد خرمت پیان بچ بعد هم سواران این فرستاد همراهی کردن تا مدینه به بنی که رسی دایشه گفت بین من و علی مسائلی بود که بین اقوام انسان با اقوام شوهرش هست مسئله رو کشید جای دیگه ای و گذشت علی با من بد نکرد اما اینکه شنیدید دیگه اینکه با ناموس پیامبر یا مصطوی رو تو بیامون فرستاد از بصره تا مدینه این کارش رو دیدم این کارش سش بود اونجا بود که اون سوارانی که آیه شراع بردن محیای این به امر امیر بودند بودن اومدن یک پیک خودشون معرفی کردن به نشان دادن شخصیتشون رو که علی با پنجاه زن مسلح به شکل مردان آیه را تا مدینه همراهی کرد آیه صرف رو پایین انداخت من با ناکسین این گونه جنگیدم و اما ناکسون فقط قاتل تو. و عمل قاستون فقط جاهد تو قاستون از ماده قسط مکرر گفتیم خدمت دوستان در چلا و محرم واجگانی داریم که به اینها میگن واجگان داد. یعنی دو معنی متضاد دارن مثل جون یعنی سفید و سیاه و لیل ازا اص اس اصه یعنی اقبل و ادبر سوگن به شب وقتی می آید یا می رود یعنی دو معنی متقابط اشاره کردم که ما آن از زلف یار باز کنید شب خوش اس بدین بسش دراز کنید حضور محفل و است و دوستان جمعاً و ان یکات بخوانید و در فراز کنید یعنی چی یعنی وان یکات بخوانید و اما درم ببندید که حسودان نبینند نه و ان یکات بخوانید درم باز کنید نگران نباشید زین یکات کار خودش میکند در فراز کردن در فارسی یعنی بستن در و باز کردن در از الفاظ از داد دو معنایی قسط اینطوره یعنی هم جور هم عدل قسط هر دو معنا رو داره جایی که به این معنا به کار برده نشه تو قرآن هم دیدید که قسط معنی بدی داره و اما القاستون فكانوا لجحنمه حتبا قاسطین قرائ خوراک جهنمند اما ان الله يحب المقتسین خدا مقتسین رو دوست داره حالا این میره به باب افعال همزه شمزه سلب میشه ازال جور این را دیگه فنی داره که دیگه خارج از گفتگوی ماست توجه دارید اینجا قسط به کدام معناست قاصد به معنای چی؟ جایر ستمگر و اما القاسطون فقط جاحت تو با قاستین هم جنگیدم قاستین و ستمگران که بودند؟ اونی که چهل سال کاخ ظلمش به درازا کشی ساخت و فریادهای فاری در کنار ف کاخ شنیده میشد؟ شد حکومت شام معویت ابن سفیان با معاویه و یاران زادمش هم جنگیدم یعنی سفین وقعه خونین سفین یک کسیست به نام ابن مزاهم شیعی هم نیست ششم کتابی داره به نام وقعت سفین واقعا کتابیه وقعه تو سفین واقعه سفین چی بوده؟ چی گذشت به امیر و یارانه؟ چی گذشت به اماره ها تو اون صحنه و ماجره چقدر صحابی پیامبر تو سفین کشته شدن تو رکاب به المؤمنین؟ چند تا صحابی پیامبر کشته شدن؟ شست و خورده ای؟ و اما قاستون فقط جاهدتون گروه سوم و عمل مارقتوں فقط دو وقت تو اما گروه سوم مارقه یا مارقون خوب دقت کنید چی رو تو کمان بذات تیر بر چشم اسفندیان جهان تیر شد پیشون نامدار وقتی این تیر رو میزنند تو چله کمان راهام میکنن میگن مرقت سهم انل قوس یعنی تیر از کمان چی شد خارج شد و بعد تیر از کمانچو رفت نیاید به شست باز وقتی رفت رفته دیگه اینو میگن مرق گروه ثبت کسانی بودن که مارقون بودن این واقعی نیست دیگه این با قافه دیگه اهل مورد نیستن دینا اینا کسایی که رفتن خارج شدن کیند اینها چیند و اما المارقه فقط در وقت و دوخ به کشیدن خار کردن با قدرت با اینها مقابله کردم و به زیر کشیدم اینها را این مارقین کی بودند شاید این مارقین بیشتر کمره علی را شکستند و اون دو گروه اول تمام شواهد نشان میده مرقه ای تیر خارج شد بعد شما به اینها میگین چی؟ میگید خوارج میگید خوارج اینا که بودن؟ گوش کنید عزیزان بعد از خونه این از تو ماجره بعد از خونه این رو تقسیم هنامه یک کسی بلند شد اومد یه چیزی رو گفت به پیامبر یه توهینی کرد شبه توهینی پیانبر کرد رام نوبرش کنید یک خارج گوش کنید این که میکنم می دارم از ابن عبل حدید متذری می کنم. یعنی جنده 13م شرح نهج البلاغه ابن ابالحديد معتزلی این دشمن من در اهل سنت نو تو کتاب شیخ تمام این رو نوشتن که وقتی این صحنه پیش اومد پیامبر گفتن راهش کنین دعما فهمیدن یخرج من ذئ ازی هازا ذئ رو بگیم مثلا از تبعات این بدنبال این زیر بلیت این این تابه منزق ازی هازا قوم جماعتی بیرون میان که یمرقون مند دین از دین چی میشن؟ خارج میشن کما یمرق و سحمون رمیه همونطور که تیر از کمان میرود اما گمان نکنید که اینها به این سادگی خارج میشن از دین توه تقر و سلات و کنفیجم به هم نماز شما در کنار نماز این ها نمازی دارن مد ولی زالینی دارن که حسرتشو میخورید که چرا اینا چه قرارت نمازی دارن و سومکم انده سومهم روزه شما در نزد روزه اینا اعتداء به توجه بهش نمیشه کرده اصلا چیزی نیست لایو اصلا شمارش نمیشه و یقرعون القرآن و چه قرارت قرآنی میکنن اما لایو جاوز و جراعت قرآن از ترقبهشون بالاتر نمیاد اونچه که میخوانند حافظ حافظان قرآن اما آیتهم حجت اینها و جلودارشون رجلان اسود یعنی تمسیح چهره است مختعلیت یه دستش هم مشکلی دارد و علایده و بر یه دستش یه برامدگی که آنها صد مانند پستان زنان مرقوس ابن زهر معروف به زد به همین دلیل سخن پیامبه معروف به زد صدیه رهبر خبارج در مقابل امیر, المومنی. کی بود این؟ امیر المومنین چی بودین؟ امیر الان از اون میگه و اما شیطان رده این همونه اما شیطان رده رده به گودانی میگن تا آبو توش جمع میشه کنار بلندی پستیس آبو توش جمع میشه این رو میگن رد اما شیطان رده رو وقتی با این مارقین درگیر شدم شیطان رده رو فقط کفیدوهو به سعقتن سوم اطلاها وجبتو غنبهی و تو صدره یه نعری برو زدم یه بانجی برو زدم که با صدای نعری من مرد یه خروشی برو زدم از اون خروش های هیدری یه هنگامی که تیغ رو کشیدم نعرهی برو زدم که صدای به تعبیر ما ترکیدن قلبش شنیده شد به تیغ من نکشید کارش فقط کفیدو کفیدو به سعقتن به فریادی که سمع وجب وجبتو قلبه که فرو ریختن قلبش و استرام به سینه او شنیده شد خیلی خوب از کردم این ماربون و خوارج عزیزان با اینها خیلی مشکل بود کار کردن به دلیلی که پیشانی ها پینه بسته ریش ها ها گرفته ریش ها اینطور و پیشانی ها هم که پینه بسته قرآن هم که تون تون تون دارم میخونه یورتلونه ها ترتیلا کی میتونه جز علی با اینها چه کردند اینها با اسلام از اولین احکام خبارجین بود که جز خودشون همگان مشرک و کافرن جز خودشون و اونها که به اصول اونها معتقدن م. که بعد از سفین بعد از حکمیت گفتن علی خارج شد از اسلام و علی کافره نه کافره بلکه کافر واجب قتله هر کسی جز خودشون به کافر و مشرک می دانستن نمیخوام وارده این بحثا بشم اما لازمه بگم خدمت دوست اون گروهی شما امروز به عنوان سلفی ها تکفیری ها و وحابیون میدونید همینان یعنی گروهی جز خودشون بقیه یک مسلمانان شیعی و سنی رو مشرک و نجس و کافر میداند ثبت خودشون حالا ریشه اینها کجا بازگشت اینها به این تاریخ حصر ما کجا جنایاتی که این جماعت امروز کردن به اسلام از دل این ها این و طالبان و این گروه های و چهره اسلام رو در دنیا به لجن کشیدند یه چهره خشن تروریست و بونگذاری و کشتن و قتل و قارت رو چهره اسلام کردن همونی که امیرالمومنین با اون همون ترورهای ابن ملجمی، اون شکلش امروز شکل دیگه همون خوارج که امروز هم مانند اون روز شمشیر رو از رو الان دیگه زیر نیست شمشیر رو از رو در مقابل شیعه باستان، و از بوران حد امروز شیعه است این اصل زمان ما از با این حجمه گسترده در سطح جهان اینها نسبت به با نمیخوام شما رو مکدر کنم اخبار و ارقام براتون بگم بمانه که چه دارن میکنن واعصفا از دوستان ما که ناآگاهانه به بعض از عراجیف اینها گوش کنند واعصفا چه خونی در دل علی میجوشد از این جماعت و خوش مغزه نابخلت خوارج فرمود و اما این شیطان بزرگشون و رهبرشون رو فقط کفیتو هون جنگ نهروانشون نهروان مهمترین جنگ امیرالمومن. فرمود اگر فرار کردن بزنیدشون در بسره چی گفت؟ فرمود اگر فرار کردن اینجا فرمود اگر فرار کردن بزنید یه نفرشون رو نگذارید یعنی خطر خوارج دشمن داخلی از دشمن خارجی بیشتر هست با این وضعیت و با این تحجر و با این خوشمغزی و با این مسائل حالا آره اینا حسابای احکامی احکام، حرفایی دارن که دیگه وقت گفتن اون نیست اینا رو با تو خطبه شقشقیه بگیم خود خطبه سبومه نحجر بناقه انشانده اون زمان جنگ رهروان به پایان رسید و پیغمبر فرموده بودند این رو این نسوزت معنا بخونم براتون هست ابن عبدالحدیث داره پیامبر فرموده بودن که این اتفاق می‌افتاد و زوسیه به دست تو کشته می‌شه جنگ به پایان رسید امین المؤمنین هم این بهدارون اول جنگ داده بودن کما قالمون رسول الله گشتن گشتن جنازه زوسیه هر قوسی بن پیدا نشود یه ایده گفتن ببین علی آه. این حدیث پیامبرن امیر المانی خودشون اومدن شروع کردن تو کشنها جنگ گشتن گشتن گشتن رسیدن به پای یه بلندی یه گودال آبی لجن بود دیدن یه پای دیده میشه کشیدن بیرون گفتم بیهت تماشا کنیم ببینید پسان رو دستش ببینید هر هرقوس ابن زهی فریاد و نحره الله نهره از جماعت و کل سپاه برخاست به صدق رسول الله صدق رسول الله و چه فتنه هایی ایجاد کردن این خوارش در اسلام خلیف کشی رو چطور باب کردن چی کردن و بماند و چه خونی به دل حسد الله و قالب علیه و نبی طالب شد در ادامه آخر ارز من تمام فرمودن و بقیت بقیتون من اهل البعد راموندن با این ها که من جنگیدم اما هنوز هستن اهل بقی اهل برق, برق که بودن آفرین آفرین آستون اهل بقی رو امام شامی ها گفتن مواویه به همچه راموندن و, ال... و این اهل باقی موندن ولئن ازنالله ها فلکره تهل ایه اگر خدا به من رخصت دهن علی میداند که دیگه رخصتی نداره میدونه که ان غریب است که مهرا به مسجد کوفه به خون فرقه به فرق به خون فرق سرش باید چی بشه رنگین بشه فود و الله ازلهلی فلکرت علم اززن الله فلکرت عله اگر خدا به من وقت بده که دوباره برگردم به شام و به سوی ماویه و یاراناش لایلا نه منهم این بار دیگه دما از سوزگارشون در میاره برای اینها یعنی ولا اقهرنهم قلبه برای اینها میکنم و دولت و قدرت تو برای اینها ثابت میکنم الا ما يتجز تتشذر و من اطراف بلاد تشذرن مگر اندکی از اینها بتوانند از دست ما شزورن به ندرت بگریزند و انسون صبر کردند اما چنین فرصتی رو برای بازگشت دوباره فرزند دعوت پیدا نکرد پروردگارم توفیف فهم زرائف سخن امیر المؤمنین و حقایق و اندرون این سخن رو بر همه ما ارزانی بفرما و السلام علیکم